من ماندم و یک دنیا و فکر و خیال از عالمی که درش تازه به روی من باز شده بود. آن شب اولین شب عمرم بود که خوابم نمیبرد. برای اولین بار بعد از اینکه همه خوابیدند بیدار بودم و از پشت پنجره ستاره ها را نگاه میکردم و به گذشتهها فکر می کردم. به اولین روزهای آشناییم با زری به محل و کوچه با صفایمان. به هاجاقا و محترم خانم و مهربانیشان به اینکه توی این خانه و این کوچه بزرگ شده بودم به روزی که برای اولین بار به مدرسه رفتم و بوی اولین روز مهر ماه که احساس کرده بودم به خوشیها و هایی که توی این خانه و محله دیده بودم به روزی که مادر بزرگ زری مرده بود و من که فقط هشت سالم بود از شلوقی و جنازه و صدای جیق زنها ترسیده بودم و محمد که آرام با چشم های مرا از شلوغی دور کرده و برده بود پیش زری که توی راه پله های پشت بام نشسته بود و گریه میکرد. آن روز من و زری و امیر و محمد چهارتایی روی پله های کنار هم چقدر گریه کرده بودیم. و به سه سال بعد وقتی عروسیه خواهر بزرگ محمد بود. خانه ما مجلس مردانه بود. وقتی من و زری دو سه بار برای بردن وسایلی که مادر و خانم جون لازم داشتند به خانه رفته بودیم محمد هر دومان را دعوا کرده و گفته بود حق ندارین هی این توی مردونه و من چقدر از او بدم آمده بود که توی خانه خودمان دعوایم کرده بود به همین دو سال قبل فکر میکردم که یک روز گرم تابستان با زری توی حیات دنبال هم میکردیم و با سر و صدا و حیوهو به همدیگر آب می که یک دفعه در زده بودند و ما هر دو خیس آب فکر کرده بودیم مادر و محترم خانم هستند که از روز برگشتند در را پر و باز کرده بودیم و درجا خوشکمان زده بود چون پشت در محمد خشمگین و عصبانه ایستاده بود آن روز برای اولین بار با محمد چشم در چشم برای چند لحظه خیر مانده بودم و وقتی که محمد سرش را پایین انداخت من تازه به خودم آمدم و دوان دوان دور شدم اما صدای عصبی محمد را که از خشم درگ شده بود شنیدم که به ذریع اعتراض میکرد. خجالت نمیکشی؟ همه محله باید بفهمن که دارین آب میکنین؟ صدای خندتون تمامی کوچه را برداشته؟ و دست با چگی و مذارت خواهی و خشم و خجالت من که تا چند وقت سعی میکردم با محمد روبرو نشوم. حالا که خوب دقیق میشدم و گذشته را توی ذهنم زیر رو میکردم، کار خودم هم تعجب می کردم یعنی آن وقتها هم من برای محمد مهم بودم؟ یعنی واقعاً حرکاتش در هزارها برخوردی که قبلا داشتیم روی قصد خاصی بوده؟ من تا همین چند ساعت پیش از محمد بیشتر حساب می بردم و ناخداگاه مثل زری به چشم برادری بزرگتر به اون نگاه می کردم می ترسیدم مبادا از رفتارم عیب و ایرادی بگیرد و خودم بیشتر فکر می کردم این حس فقط برای این است که او برادر زری است ولی حالا انگار همه چیز را طوری دیگر میدیدم. حتی احساس خودم را چرا این طور شده بودم؟ خودم هم سر در نمیآوردم. خانم جون راست میگفت مثل اینکه اگر نمیفهمیدم بهتر بود. شاید هم همه اینها را می دانستم ولی دقت نمیکردم. باز فکرهایی جور و جور به سرم حجوم آورد. همین پارسال زمستان بود که توی خانواده زری بر سر ازدواج برادرش مهدی با دختری که چند سال بود دوست داشت، کشمکش بود. آقای مهدی که سه سال بزرگتر از محمد بود، تصمیم داشت با دختری ازدواجگانت که می گفتند از هجده سالگی دوستش داشتند. منتها مشکل از آنجا پیش آمده بود که اولا توی خانواده های مثل ما رسم نبود خود پسر با دختری آشنا شود و سانیه اینکه دختری هم آزادی داشته باشد که با پسری آشنایی برقرار کند چیزی غیر قابل قبول بود. سری می گفت مادر امینا میگن ما اصلا خانوادگی به هم نمیخوریم. و هاجاقا هم که در عین مهربانی و خوشقلبی خیلی با جذب و جدی بود و توی خانهشان حرف حرف او بود مخالف صد درصد قضیه بود هاجاقا معتقد بود مهدی می تواند برای همسری دختر خیلی بهتری انتخاب کند مهدی معتقد بود که بهتر بودن از نظر او زمین تا آسمان با نظر هاجاقا فرق می کند هاجاقا می گفت خود مهدی هم آخر سر نمیتواند تواند با دختری که اینقدر آزاد بزرگ شده زندگی کند و تازه در صورت ادامه زندگی رنگ خوشبختی و آرامش را نخواهد دید و پس فردا توی سر و کله خودش خواهد زد اما حالا عقلش نمیرسد. محدی مهدی می گفت که زمان عوض شده و طرز فکر او خیلی با پدر و خانوادهش فرق می کند مخالفت هاجاقا از وقتی خود دختر و خانوادهش را دیده بود خیلی سختتر شده بود و می گفت این دختر مثل ماری خوشخط و است و با پر عقل مهدی را دزدیده و و خلاصه بیچار معترم خانم هم مثل تمام مادرها میان این کشمکش گیر افتاده بود از طرفی سعی می کرد دل هاجاقا را به خاطر مهدی نرم کند و از طرفی تمام سعی خودش را برای سر اغلا وردن مهدی که در هیچ مورد هم موفق نمی شد. شاید بیشتر سختی کار و کنار نیامدن مهدی و هاجاغا به این دلیل بود که مهدی از نظر خلق و خو خیلی به هاجاغا شباهت داشت مثل پدرش جدی، مسمم و حرف حرف خودش بود این بود که هرچه هاجاغا کار شکنی می کرد که ازدواج سر نگیرد، مهدی مسمم بود که به هر قیمتی این کار را بکند. و یکی از شبها که کار بحث هاجاقا و مهدی در اثر این حرف که هاجاغا گفته بود، این کار را بکن ولی تو روز خوش نمیبینی خیلی بالا گرفته بود. محترم خانوم سراسیمه آمد و از آقا جون خواست که واسطه بشود و نگذارد که مهدی به قهر از خانه برود. من هم به اصرار زری که خانه ما بود دنبال محترم خانوم و جون رفتم. ولی از صدای فریاد ها چنان ترسیدم که توی هشتی پشت در حیات لرزان ایستادم. و همراه زری از ترس صدای من در نیامد. بعد که محترم خانوم یادم ما افتاده بود محمد را فرستاده بود ببیند ما کجایم؟ محمد که دید هر دوی ما از سرما میلرزیم با تندی به زری گفت اینجا جایی وای توی این سرما و وقتی زری گفت تقصیر اینه از صدای داده آقا جون ترسید نیامد تو محمد چه مهربان لبخند زد و گفت یعنی شنیدن داده بابای من از قندیل بستن توی این هوا سختره من چقدر از این حرف خندیده بودم همیشه توی حرکات محمد یک جور آرامش و تسلط خاص بود حرف زدن خندیدن و حتی محبت کردنش شیرین آرام سنجیده و دوست داشتنی بود از یادآوری گذشته ها و دقت در آنها چه حس شیرینی به من دست داده بود چرا تا حالا قدر دقیق نشده بودم؟ شاید چون به محمد به چشم برادر زری نگاه می کردم، نه شوهر خودم چقدر یک شبه پر رو شده ام؟ شوهر خودم؟ حتی توی ذهنم هم این معنی برایم سنگیم بود یک دفعه چشمم به دیوار روبرو رو افتاد. سایه شاخه های درخت های حیات روی دیوار اتاق مثل انبوهی دست بود که با هم تکان میخوردند. مثل آدمی که از خواب پریده تازه یادم افتاد نیمه شبست و همه خوابند و من چقدر از تاریکی و تنهایی می درسیدم. همیشه توی تاریکی احساس می کردم. کسی دنبالم می کند. یک موجود ترسناک که از تصورش نفسم بند می آمد. الان دوباره دست خوش آن وحشت امیق شده بودم. حتی جرأت نمی کردم دست و پایم را تکان بدهم. شبهای دیگر همیشه زودتر از همه می خوابیدم و برای نماز صبح آنقدر دیر بیدار می شدم که تقریباً و روشن بود. سابقه نداشت تا این موقع شب بیدار باشم. داشتم از درس خفه می شدم. می خواستم بدوم توی اتاق خانم جون قدرت نداشتم. دلم میخواست فریاد بزنم نمیشد میخواستم لا بلند شوم و کلید برق را بزنم غیر ممکن بود خدایا چکار کنم چراغ راه رو روشن شد و من مثل فنر از جا پریدم توی راهرو و محکم برخوردم به امیر خوابالود که یکه خورد و هراسم پرسید چیه؟ چی شده؟ هیچی تاریک بود می درسیدم. توی اتاق خانم جون رو خاموش کن خوب امیر لحظه با نگاهی آقلن در سفی خابالود و گرگر نگاه نگاهم کرد و گفت تو رو خدا ببین چه کسیو میخوان شوهر بدن ولی من خوشحال از اینکه نجات پیدا کرده با عجله بالش و پتویم رو برداشتم و پاورچین رفتم توی اتاق خانم جون که همیشه بوی گلاب میداد و هر وقت پا توی اتاقش میگذاشتم بوی تسبیح ثروت خانم جون و چادر نماز و سفید گلدارش توی مشامم می‌پیچید در حالی که تازه از حرف امیر ام گرفته بود خوابیدم راست میگفت مرا چه به شوهر کردن با صدای خانم جون که میگفت خدا مرگم بده تو کی اومدی اینجا نگاش کن روی زمین که استخونات خورد شد چشمهایم را نیمه باز کردم خانم جون که برای نماز بیدار شده بود گفت پاشو ماده حالا که بیدارهی پاشو نمازت رو بخون دارن از اون میگن واسه چی اومدی اینجا؟ خندیدم و دوباره چشمهایم را بستم ولی خانم جون دست بردار نبود پاشو حتما که نباس آفتاب که زد نماز بخونی یه بارم سر وقت نماز بخون گناهش گردن من ده پاشو دیگه؟ می دیگر فایده ندارد. حالا که چشمهایم را باز کرده بودم دیگر خانم جون دست بردار نبود. به ناچار نشستم و سلام کردم. خانم جون گفت سلام روی ماهت. قرار عروس بشی سهرخیزم شدی؟ دوباره یادم افتاد. انگار خواب کاملا از سرم پرید. یاد دیشب و محمد افتادم. در عرض چند ساعت زندگی آدم چقدر میتواند تغییر کند تا همین دیروز صبح با اینکه اثر از سر شب میخوابیدم به هزار زور برای نماز بلند میشدم و فقط فکر این بودم نماز را که خواندم بپرم توی تخت و دوباره خواب نه فکری نه خیالی ولی حالا آب که به صورتم زدم چه حس خوبی داشتم نسیم خونک صبح، صدای ها، صدای از که از مسجد دور میآمد بوی بوی یاسها که هنوز از توی حیات میآمد و و چشمهای من که امروز همه چیز را طوری دیگر می دید. یادش بخیر خیر هیچ حسی توی این دنیا قشنگ تر از این نیست که بدانی به کسی تعلق داری و برای کسی عزیزی اینکه آدم بداند یک نفر به او فکر می یک نفر دوستش دارد، انگار وجود آدم را برای خودش هم عزیز و دوست داشتنی میکند و من آن روز این حالت را داشتم. برای اولین بار این حس شیرین را تجربه میکردم. حس اینکه برای یک نفر عزیزم. محمد دوستم دارد. شاید او هم دیشب به من فکر می کرده و حالا که برای نماز بیدار شده یعنی الان او هم بیدار است. حالا بعد از سالها فهمیدم حس دوست داشتن حس عاطفی و کشش روحی حس تعلق خاطر که بدون هیچ گونه رنگی از شهوت و خواستهای جسمی باشد قشنگ ترین حس های دنیا است. حسی مقدس است و شیرین که اگر کسی فقط یک بار در زندگیش تجربه کند تازه فهمد منظور خداوند از عشق و مهرم محبت چیست و آن آدم در عین اینکه ترین بنده های خداست می تواند بدبخت ترین هم باشد چون اگر این حس را تجربه کنی و از دست بدهی دیگر روحت آرام نمیگیرد و به چیزی غیر از آن حس رضایت نمی دهد می شود گفت بدبخت کسانی که یک بار هم تعم این نعمت بی همتای الهی را نچشیدند و بدبخت کسانی که یک بار این نعمت را داشتند و از دست دادند بگذریم آن روز برای اولین بار نه با خواب آلودگی و عجله با آرامش و تراوت دست و صورتم را شستم وضو گرفتم و نمازم را شمرده و آرام خواندم. درست مثل خانم جون نمیدانم چرا اصلا خوابم نمیامد. با آنکه شب قبلش فقط سه چهار ساعت خوابیده بودم ولی سر سرحال بودم نسیم صبح که به صورتم میخورد و آسمان که کم کم به روشنایی میرفت چقدر لطیف بود و قشنگ آن روز همه چیز به نظرم قشنگ بود و من هنوز خیلی خامتر از آن بودم که بفهمم این دل آدم است و احساس قلبیش که با اسم شود دنیا قشنگ یازشت باشد وقتی آدم از درون راضی و خوشحال است، وقتی قلبش گرم و دلش شاده است، احساس می کند همه چیز زیباست و همه خوشبختند. برعکس مواقعی که از درون تکیده و قمگین و درمانده است، قشنگترین های دنیا برایش دیره و دارست، غم قم دارد. چون خودش دلش گرفته، فکر می کند همه قمگینند. این هم یکی از اشتباه های همیشه بشر است که همه چیز را قیاس به نفس می کند. برای همین است که آدم های خوشبخت حس همدردی را آرام آرام از دست میدهند چون نمی بفهمند آدمی که رنج می کشد و در تنگ ناست چه میگوید و آدم های بدبخت درست برعکس. دقیقا مثل وقتی است که عینک به چشم داری. با اینه که دودی مگر میشود جای را روشن و دید خود من هم حالا بعد از سالها باز هم گمان میکنم که فهمیدم چون همیشه بین عمق حقیقتهای زندگی و برداشتهای ما تفاوتهای زیادی هست و معمولاً آدمها برداشت سطحی از مسائل را با فهمیدن و درک درست اشتباه میگیرند